لرمانتوف حدود دویست سال پیش یعنی در سال 1814 میلادی در موسکو متولد شد و 26 سال پس از این در سال 1841 میلادی چشم از جهان فروب است اما در همین مدت کوتاه کارنامه سروده‌های وی انقدر درخشید که لرمانتوف را ظریف و رمانتیک سرودترین ادیب سرزمین روسیه دانستند نابغه بزرگ روس زمانی که فقط 22 سال داشت به سبب سرودن قطع شعری به نام مرگ شاعر مشهور شد او قطعی مرگ شاعر رو به مناسبت قتل پوشکین سروده بود و به همین سبب مقذوب رژیم وقت روسیه قرار گرفت و به قفقاز تبعید شد بخشی از سروده مرگ شاعر رو با هم میشنویم شاعر مرده شاعر که قلام افتخار و مقذوب کسان بود پیشانی پر غرور خود را خم کرده و با آتش انتقام در گور رفته روح شاعر روزگاری دراز از دشنام بدگویان ناچیز آزرده بود هنگام زندگی او مثل همیشه یک‌کو تنها در برابر پستی و دونپروری قد برآفراشت اما در این پیکار مغلوب شد حالا دیگر دهان او که سرچشمه ترانه های سهرنگیز بود برای همیشه خاموش شده زیرا نغمه سرای جادوگر اکنون جاودانه در آرامگاه تنگ و بیزر و زیور خود به خواب رفته است لرمانتوف که با سرودن قطعه شعر مرگ شاعر شناخته شد، در 1840 نخستین مجموعی اشعار خود را چاب کرد. به جز این کتاب، نسری با نام قهرمان اصر ما را نوشت. کتابی که سرنوشتش مثل خالق آن یعنی لرمانتوف به ناتمامی ختم شد. چرا که نابغه بزرگ روز، یک سال پس از این بدون آنکه نگاشتن کتاب قهرمان اصر ما را به پایان برساند، در دوئل کشته شد. Thank you. با بیم به آینده و با استراب به گذشته می نگرم همه جا چون گناهکاری که پای چوبه ی دار استاده باشد سراغ آشنایی را می گیرم که راز درون مرا بفهمد راستی آیا روزی خواهد رسید که منادی مرگ راز زندگی را به من بیاموزد و مقصد نهایی این امیدها و تمناها را برایم آشکار کند؟ آنچه را به زمین به دهکار بودم پس دادم حالا خاموش نشستم و در انتظارم زیرا وقت رفتن فرابسیده است بخشی از سروده ی تمناهای من اثر لرمانتوف رو شنیدید. صاحب نظران عرصه ی شعر و ادبیات شعر لرمانتوف را مظهر کمال زیبایی دانستند و درباره خود او گفتند لرمانتوف فرنده بود از بهشت و مدت کوتاهی زندانی قفص حیات و ناله های سرداد که از خود بهشت می سرودهای دیگر از سرودهای های لرمانتوف را تقدیمتون می کنیم. شب خاموش است گویی سهرا گوش به صدای خداوندی فراداده و ستارگان با ستارگان دیگر به راز و نیاز پرداختند اما من تنها و منزادی در جاده سنگلاخی که میان ماه شامگاهی میدرخشد به راه خود میردم همه چیز و همه کس در خواب رفته نور ماه روی برکه میدرخشم انواج دریا در پرتوه سرد محتاب به ساحل می و بازیکنان باز می گردند. نه، هیچ چیز قم سرکش مرا در این قربت تسکین نخواهد داد